فصل سی و چهارم دو یا چند ملودی که همزمان به گوش می رسند هیلده روی تخت نشست این پایان داستان صوفی و آلبرتو بود ولی دقیقا چه اتفاقی افتاده بود؟ چرا پدرش این فصل آخر را نوشته بود؟ فقط به این خاطر که می‌خواست قدرتش را در دنیای سوفی به رخ بکشد؟ هیلده غرق در فکر و خیال دوش گرفت و لباس پوشید. به تندی و را خورد و از شیب باغ پایین رفت و خودش را روی نیمکت تا بی جا داد. او با آلبرتو موافق بود که تنها اتفاق معقول آن مهمانی سخنرانی او بود. پدرش که واقعا فکر نمی کند دنیای هیلده به همان آشفتگی مهمانی است یا اینکه دنیای او هم عاقبت از میان خواهد رفت. و اما ماجرای صوفی آلبرتو نقشه سری آنها به کجا کشید؟ آیا هیلده خودش باید داستان را تمام کند؟ یا اینکه آنها واقعا توانسته بودند از داستان فرار کنند؟ ولی پس حالا کجا بودند؟ ناگهان فکری به ذهن هیلده رسید. اگر صوفی و آلبرتو واقعا فرار کرده باشند، چیزی در این باره در پوشه نخواهد یافت. متاسفانه هر چانجا نوشته شده بر پدرش واضح و آشکار است آیا ممکن است چیزی میان خطوط نوشته شده باشد؟ به نظرش رسید این جمله را پیشتر جای میان نامه های پدرش دیده هیلده دریافت که باید کل داستان را یکی دو بار دیگر بخواند وقتی مرسدس سفید وارد باغ شد آلبرتو صوفی را با خود به درون مخفیگاه کشاند سپس به درون جنگل رفتند و به سمت خانه سرگرد دویدند. آلبرتو فریاد زد: "بودو، این ماجرا باید قبل از اینکه بخواد دنبالمون بگرده اتفاق بیفته. الان از تیررسش در امانیم؟ فعلا تو محدوده مرزیم." آنها عرض دریاچه را پارو زدند و با عجله وارد کلبه شدند. آلبرتو دریچه ای را در کف اتاق باز کرد و سوفی را به درون زیرزمین هل داد سپس همه چیز تاریک شد روزهای آینده را هیلده به کار کردن بر روی نقشهاش گذراند برای آن در کوپنهاگ چند نامه فرستاد و چند باری هم به او تلفن کرد از چند دوست و آشنای دیگر هم کمک خواست و دست کم نصف همشاگردیهایش را به کار گرفت خاندن دنیای صوفی را نیز در این میان از سر گرفت. این از آن دسته داستانهایی نبود که با یک بار خاندن کارت با آنها تمام شود. پیوسته ایده های جدیدی درباره سرنوشت سر صوفی و آلبرتو پس از آنکه مهمانی را ترک کردند به ذهنش خطور میکرد. شنبه بیست و سوم جوان هیلده حدود ساعت نه صبح ناگهان از خواب پرید. میدانست که پدرش حالا دیگر اردوی سازمان ملل را در لبنان ترک کرده. اکنون فقط باید صبر کرد. برنامه باقی روز پدر دقیقه به دقیقه با کوچکترین جزئیات تحریزی شده بود. هیلده در طول صبح به همراه مادرش به تهیه و تدارک مراسم شب نیمه تابستان پرداخت. نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد که پیوسته به سوفی فکر نکند. به اینکه او چگونه به مادرش برای تدارک مهمانی شب نیمه ای تابستان کمک کرده بود ولی آن ماجراها دیگر گذشته بود یا شاید هم نه شاید درست در این لحظه مشغول چیدن میز باشند سوفی و آلبرتو روی چمنها مقابل دو ساختمان بلند نشستند هواکشاو و کانالهای زشت تهویه ساختمان در دیدرسشان بود زوج جوانی از یکی از ساختمان ها بیرون آمدند. مرد کیف قهوهی رنگی در دست داشت و زن کیف دستی قرمزی برشان انداخته بود. ماشینی از جاده باری که پشت سرشان عبور کرد. صفی پرسید چی شد؟ موفق شدیم. ولی الان کجاییم؟ اینجا اصلوه. مطمئنی؟ شک ندارم. یکی از این ساختمانها اسمش هست شتو نوف، یعنی قصر نو. مردم اونجا درس موسیقی می‌خونن. اون یکی هم دانشکده الهیاته. یکی کم بالاتر رو تپه ساختمان علوم طبیعیه و اونجا رو نوک تپه دانشکده ادبیات و فلسفه است. یعنی از کتاب هیلده اومدیم بیرون و سرگاد دیگه نمیتونه کنترلمون کنه؟ آره. اون دیگه هیچ وقت نمیتونه ما رو اینجا پیدا کنه. ولی پس وقتی داشتیم تو جنگل میدویدیم کجا بودیم؟ وقتی سرگرد سرش گرم کوبوندن مرسدس مشاور مالی به درخت سیب بود ما از فرصت استفاده کردیم و تو مخفیگاه قایم شدیم اون وقت تو مرحله جنینی قرار گرفتیم یعنی هم متعلق به دنیای قدیم بودیم هم متعلق به دنیای جدید ولی سرگرد قایم شدنمونو پیش بینی نمیکرد. چرا این فکر رو میکنی؟ چون وقت امکان نداشت به این آسونی ولمون کنه همه چی انگار خوب پیشرفت که که یه خواب بود البته هیچ بعید نیست که دست خودشم تو کار بوده باشه. منصور چیه؟ بالاخره اون بود که مرسدس سفیدون روشن کرد. احتمالا هر کاری میتونست انجام داد تا حواسش از ما پرت بشه. بعد اون همه ماجرا دیگه حتما اصبا در اومده بود. اکنون زوج جوان چند متری بیشتر با آنها فاصله نداشتند. سوفی از اینکه روی چمنها کنار مردی به مراتب بزرگتر از خودش نشسته بود، کم و بیش احساس خجالت میکرد. با این حال دلش میخواست کسی حرف آلبرتو را تعیید کند. پس از جا بلند شد و به سمت آنها رفت. ببخشید ممکنه لطفاً بگین اسم این خیابون چیه؟ ولی زن و مرد به کل او را نادیده گرفتند. این موضوع چنان به صفی برخورد که دوباره از آنها پرسید تا جایی که من میدونم جواب مردم و دادن خیلی هم کار سختی نیست. پیدا بود که مرد جوان سخت درگیر توضیح دادن موضوعی به زن جوان است. آهنگسازی به شیوه چند صدایی تو دو تا بود عمل میکنه. یکی بود افقی یا ملودیک، یک کم بود عمودی یا هارمونیک. بنابراین همیشه دو یا چند تا ملودی داریم که همزمان به گوش میرسن. ببخشید که میپرم وسط حرفتون ولی این دو تا صدا با هم ترکیب میشن و تا جایی که ممکنه مستقل از هم شکل میگیرن، مونتاها بر اساس قوانین هارمونی. این همون چیزیه که بهش میگیم کنترپوان، یعنی در واقع نوت در برابر نوت. چه بیادب آنها نکر بودند و نکور سوفی برای بار سوم تلاش کرد و این بار جلویشان ایستاد و راه را بر آنها بست. اما به سادگی کنار زده شد. زن گفت بگم اونم میخواد باد بیاد صوفی به سرعت نزد آلبرتو برگشت و با ناامیدی گفت صدامو نمیشنون و با گفتن این حرف یاد خوابش درباره هیلده و صلیب طلایش افتاد این بحایه که ناچاریم بپردازیم وقتی آدم از یه کتاب در میره نمیتونه انتظار داشته باشه موقعیت شبیه موقعیت نویسندش از اب در بیاد ولی ما این مهمم همینه از این به بعد ما حتی یه روزم از زمانی که مهمونی فلسفی رو ترک کردیم پیرتر نمیشیم یعنی دیگه هیچ وقت نمیتونیم با آدمای دورو دور ارتباط واقعی برقرار کنیم؟ یه فیلسوف واقعی هیچ وقت نمیگه هیچ وقت ساعت چنده؟ ساعت؟ هشت همون ساعتی که از مهمونی زدیم بیرون حدس میزدم امروز پدر هیلده از لبنان برمیگرده گرده. واسه همینم نباید وقت تلف کنیم. تو مگه منظورت چیه؟ دلت نمیخواد بدونی وقتی سرگرد میرسه به ارکلی چه اتفاقی میفته؟ معلومه که دلم میخواد. ولی خب آخه پس معتلش نکن. آنها به طرف مرکز شهر به راه افتادند. در این بین کسانی از کنارشان گذشتند. ولی چنان یک راست به راهشان ادامه دادند که گویی صوفی و آلبرتو نامرئی‌اند. کنار جدول خیابان سر تا سر ماشین پارک شده بود. آلبرتو کنار کروکی قرمز رنگ کوچکی ایستاد. سقف ماشین کنار زده شده بود. فکر کنم این کارمون رو راه بندازه. فقط باید مطمئن بشیم مال خودمونه. یک کلمم از حرفت سر در نمیارم. پس بذار برات توضیح بدم. ما نمیتونیم همینطوری یه ماشین معمولی و که مال یکی از مردم شهره برداریم و بزنیم به چاک. فکر میکنی چه اتفاقی میافته وقتی مردم ببینن یه ماشین بدون راننده درواس خودش را میره؟ از اون گذشته به احتمال قوی حتی نمیتونیم روشنش کنیم. خب این کوروکی فرقش با اونایی دیگه چیه؟ گمونم قبلا توی فیلم قدیمی دیدمش. ببین ببخشید ولی من دیگه واقعا از این حرفای مرموزت خسته شدم. این یه ماشین خیالی صفی درست مثل خود ما مردمی که رد میشن اینجا فقط یه جای پارک خالی میبینن منطقه قبل از اینکه که را بیفتیم باید از این موضوع مطمئن شیم آنها کنار ماشین ایستادند و منتظر شدند کمی بعد پسری سوار بر دوچرخه در پیاده رو ظاهر شد اون ناگهان دسته ای دوچرخه را چرخاند و از وسط ماشین قرمز به درون خیابان پیچید دیدی مال خودمونه. آلبرتو در سمت راست را باز کرد و گفت مهمون من باش. و سوفی سوار شد. آلبرتو پشت فرمان نشست. سوئیچ روی ماشین بود. آن را چرخاند و موتور روشن شد. آنها از خیابان کلیسا به سمت جنوب رفتند و به جاده اصلی درامن رسیدند. از لیساکر و سانویکا گذشتند و به سمت لیل سند راندند. هرچه چه پیش در می به ویژه پس از عبور از درامن بر تعداد خرمنهای آتش جشن نیمه تابستان افسوده می شد شب نیمه تابستان صفی العاده نیست؟ اونم وقتی توی یه ماشین روباز نشسته باشی و یه نسیم خنکم به صورتت بخوره حالا تو واقعا فکر می کنی کسی ما رو نمی بینه؟ به جز کسایی که مثل خودمونن شاید چند رو ببینیم الان ساعت چنده؟ هشت نیم. بعد چند جا میون بزنیم. نمیتونیم تا ابد پشت این کامیون بمونیم. آلبرتو با گفتن این حرف فرمان را چرخاند و وارد مزرعه گندم بزرگی شد. صفی به عقب نگاه کرد و دید پشت سرشان رد پهنی از ساغه های خمیده بر جای مانده. آلبرتو گفت فردا که اینا رو ببینن میگن حجب بادیم مزرعه وزیده. روز شنبه 23 ژوئن ساعت چهار و نیم بعد از ظهر هواپیمای سرگرد آلبرت کناگ در فرودگاه کاستروب به زمین نشست تا همین جا هم او یک روز طولانی را پشت سر بود مرحله یکی مانده به آخر هواپیمایی بود که وی را از روم به اینجا آورده بود سرگرد در حالی که یونیفرم سازمان ملل را برتن داشت لباسی که به پوشیدن آن افتخار میکرد، از بازرسی گذرنامه گذشت. او تنها معرف خود یا کشورش نبود، آلبرت کناک نماینده یک نظام حقوقی بین المللی بود. سنتی به قدمت یک قرن که اکنون تمام دنیا را در بر گرفته بود. سرگرد تنها یک ساک کوچک بردوش داشت. باقی چمدان را در روم تحویل قسمت بار داده بود. حالا فقط باید گذرنامه قرمز رنگش را نشان میداد و سوار می شود. در گمرک چیزی برای اظهار کردن نداشت. تا پرواز بعدی به مقصد کریستیانسن سه ساعتی وقت بود. فرصتی کافی برای تهیه سوقاتی. البته سرگرد بزرگترین هدیه زندگیش را دو هفته پیش برای هیلده فرستاده بود. همسرش ماری هم آن را روی میز کنار تخت دخترشان گذاشته بود تا وقتی در روز تولدش از خواب بیدار میشود آن را پیدا کند پس از گفتگوی تلفنی که دیر وقت همان شب با هم داشتند سرگرد دیگر با هیلده صحبت نکرده بود آلبرت چند روزنامه نروژی خرید میز خالی در بار برای خودش پیدا کرد و یک فنجان قهوه سفارش داد مشغول از نظر گذراندن تیترهای اصلی بود که از بلندگوهای فرودگاه شنید پیام شخصی برای آقای آلبرت کناک از آقای آلبرت کناک درخواست می‌شود به اطلاعات فرودگاه مراجعه کند ماجرا از چه قرار بود عرق سردی بر پشتش نشست بعید است دستور داده باشند که به لبنان برگردد شاید در خانه اتفاقی افتاده آلبرت شتابان خودش را به اطلاعات فرودگاه رساند من آلبرت کناک هستم این پیغام برای شماست فوری او بلا فاصله در پاکت را باز کرد درون آن پاکتی کوچکتر بود که رویش نوشته شده بود برای سرگرد آلبرت کناک به آدرس اطلاعات فرودگاه کاستروب کوپنهاگ. آلبرت با حالتی عصبی پاکت کوچکتر را باز کرد پاکت حامل یادداشتی کوتاه بود هدر عزیزم خوش آمدی چقدر خوشحالم که پس از این همه وقت که در لبنان بودی بزودی تو را در خانه میبینم حتما درک میکنی که نمیتوانستم بیش از این انتظار بکشم مرا ببخش که ناچار شدم از طریق بلندگوی فرودگاه پیدایت کنم آخرین ساده ترین راه بود پی نوشت. متاسفانه دادخواستی مبنی بر دزدی و وارد آوردن خسارت به یک مرسدس بنز از طرف مشاور مالی آقای اینگه در خانه انتظارت را میکشد پینوشته پینوشت وقتی برسی من احتمالا در باغ نشستم ولی پیش از آن هم شاید باز خبری از من شد پینوشته پینوشته پینوشت راستش را بخواهیم میترسم برای مدتی طولانی در باغ بمانم. آدم در چنین جاهایی به آسانی ممکن است در زمین فرو برود و ناپدید شود. با عشق از طرف هیلده. کسی که برای تدارک بازگشت تو بخانه تمام وقتی را که باید در اختیار داشته. سرگورد آلبرت کناک ابتدا نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد. ولی خوشش هم نیامد که این چنین آلت دست قرار گرفته. او همیشه دوست داشت مهار زندگیش در دست خودش باشد. ولی حالا این دختره که بدجنس میخواست وانمود کند که از لیللسن حرکات او را در فرودگاه کاستروب تحت کنترل دارد. ولی واقعا چگونه از پس این کار برآمده؟ پاکت را در جیب جلوی سینهش گذاشت و قدم زنان به سمت مرکز خرید کوچک فرودگاه به راه افتاد. در حال وارد شدن به یک مغازه عقیف فروشی دانمارکی بود که چشمش به پاکت کوچکی افتاد که به شیشه مغازه چسبانده شده بود. روی پاکت با ماژیک نوک نوشته بودند: سرگورد کناک. آلبرت پاکت را از شیشه کند و آن را گشود. هیامی شخصی برای سرگورد آلبرت کناک به آدرس مغازه عقیف فروشی دانمارکی، فرودگاه کاسترو. پدر عزیزم، ممنون می شوم که برای من یک سالامی دانمارکی بزرگ بخری. ترجیحاً یک دو کیلوییش اش را. مامان هم به احتمال زیاد سوسیس کنیاکی دوست دارد. پینوشت، خاویار دانمارکی هم بدک نیست. قربانت هیلده. آلبرت نگاهی به دورو برش انداخت. به هر حال او که نمی اینجا باشد. یعنی ممکن بود همسرش او را به کپنهاگ فرستاده باشد تا بتواند پدرش را در اینجا ملاقات کند. آخر این دستخط خود هیلده بود. ناگهان ناظر سازمان ملل احساس کرد زیر نظر است. انگار که کسی از دور همه کارهایش را کنترل کرد. احساس میکرد عروسکی شده، بازیچه داستان یک کودک. وارد مغازه شده و یک سالامی دو کیلوی، یک سوسیس کنیاکی و سه شیش خاویار دانمارکی خرید. سپس راهش را در ردیف مغازه ها پی گرفت. تصمیم داشت برای هیلده یک هدیه تولد واقعی بخرد. شاید یک ماشین حساب؟ یا یک رادیوی سفری؟ بله، این ایده خوبی بود. وقتی به مغازه لوازم الکترونیکی رسید دید که آنجا هم پاکت کوچکی به شیشه چسبیده روی این یکی نوشته بود برای سرگورد آلبرت کناگ به آدرس جالب ترین مغازه فرودگاه کاستروپ درون پاکت سفید یادداشت کوچکی بود که می گفت، پدر عزیزم صوفي سلام رساند و بابت رادیو تلویزیون دستی که پدر سخاوتمندش به عنوان هدیه تولد برایش فرستاده بود بسیار تشکر کرد. هدیه بی‌نظیری بود ولی از سوی دیگر کاملا پیش پا افتاده. باید اعتراف کنم که در مورد این قبیل چیزهای پیش پا افتاده سلیقه من و صوفي به هم شبیه است. پی نوشت اگر هنوز به مغازه عغذیه فروشی دانمارکی و فروشگاه بزرگ معاف از مالیات که مشروب و دو خانیات میفروشد سر نزدهای دستورالعملهای دیگری را نیز در آنجا خواهی یافت پینوشت پینوشت برای تولدم مقداری پول هدیه گرفتم بنابراین میتوانم سیصد و پنجاه کرون از هزینهٔ تلویزیون دستی را خودم تقبل کنم با از طرف هیلده، کسی که از همکنون شکم بوغلمون را پر کرده و سالاد والدورف تدارک دیده. قیمت تلویزیون دستی 985 کرون دانمارک بود. در قیاس با وضعیت آلبرت کناک که به واسطه حقه های دختر آبزیرکاهش دائم به این طرف و آن طرف پاس داده میشد، این قیمت واقعا پیش پا افتاده به حساب می آمد. ولی آیا او واقعا اینجا بود؟ از آن لحظه به بعد سرگرد پیوسته مراقب اطرافش بود. در آن واحد هم احساس یک مأمور مخفی را داشت و هم یک عروسک خیم شبازی. آیا او از حقوق اولیه انسانی خود محروم نشده بود؟ حس کرد چاره ای ندارد جز این که سری هم به فروشگاه از مالیات بزند. آنجا نیز پاکت دیگری به اسم خود یافت. انگار که کل فرودگاه چیزی نبود جز صفحه نمایش یک کامپیوتر قولاسا و او هم نقش مکان نما را بازی میکرد حیقام را خواند. برای سرگرد کناگ به آدرس فروشگاه معافظ مالیات در کاستروپ اینجا چیز زیادی نمیخواهم فقط یک کیسه آب نبات و چند بسته شکلات یادت باشد که اینها در نروژ خیلی گرانتر است اگر درست یادم مانده باشد، مامان از طرفداران نوشیدنی کامپاری است. پی نوشت. در طول راه خانه همیشه گوش به زنگ باش. مطمئنم که دلت نمیخواهد اطلاعات ارزشمندی را از کف بدهی. از طرف دختر بسیار تعلیم پذیرد. هیلده. آلبرت آهی از سر ناامیدی کشید. با این حال وارد فروشگاه شد و بر طبق آنچه او خواسته شده بود خرید کرد. با سه کیسه پلاستیکی در دست و ساک پرواز بر دوش به سمت خروجی 28 به راه افتاد تا منتظر رسیدن پروازش شود اگر پیغام دیگری در کار بود متاسفانه باید همانجا میماند اما درست کنار خروجی شماره 28 پاکت سفید دیگری توجهش را جلب کرد که به ستونی چسبانده شده بود برای سرگرد کناگ به آدرس خروجی 28 فرودگاه کاستروپ این هم دست خط خود هیلده بود ولی انگار شماره خروجی را کس دیگری نوشته بود هیچ معیاری برای تشخیص وجود نداشت چون چگونه میشد حروف را با اعداد مقایسه کرد پاکت را برداشت آن را باز کرد در این یکی فقط نوشته بود؟ این تقریبا آخری است. روی صندلی که به دیوار تکیه داشت فرو رفت و خریدهایش را در بغل گرفت. بدین ترتیب سرگرد مقرور مانند کودکی که برای اولین مار به تنهایی سفر می کند، سیخ نشسته بود و به مسافران نگاه می کرد. اگر هیلده اینجا بود، قصد نداشت این رضایت خاطر را برایش فراهم کند که او را زود تر بیابد. آلبرت با دل و پسی تک تک مسافرانی را که وارد می برانداز می کرد. احساس دشمنی را داشت که مأموران مخفی دولت از نزدیک او را زیر نظر گرفتند وقتی بالاخره زمان سوار شدن به هواپیما رسید سرگرد نفس راحتی کشید او آخرین نفر در صفه مسافران بود همین که کارت پروازش را تحویل داد پاکت سفید دیگری پیدا کرد که به میز بازرسی چسبانده شده بود صوفی و آلبرتو از پل برویک عبور کردند و به خروجی کراگر رسیدند. صوفی گفت، بچوری داری تو میری؟ ساعت تقریبا 9ه. الان که هواپیماش تو کیویک فرود بیاد. به هر حال کسی هم به خاطر سرعت زیاد نگه همون نمیداره. اگه تصادف کنیم چی؟ اگه یه ماشین معمولی باشه که مهم نیست. اما اگه یکی از ماشین خودمون باشه، اون وقت چی میشه؟ واخ با حواسمونو جمع کنیم. دقت کردی از کنار ماشین بتمن رد شدی؟ نه. یه جایی تو وستفول پارک کرده بود. از این اتوبوس توریستی به این آسونیا نمیشه سبقت گرفت. تو طرف جادم که جنگله. هیچ فرقی نمیکنه سوفی. کی میخوای اینو تو کلت فرو کنی؟ آلبرتو رو گفت و پیچید داخل جنگل. چنان از میان انبوه درختان میراند که گویی هیچ چیز در آنجا نیست. صوفی که خیالش راحت شده بود آهی از سر آسودگی کشید. ترسوندی منو. اگه از وسط یه دیوار آجری هم رد شده بودیم چیزی اس نمی کردیم. این یعنی در مقایسه با محیط اطرافمون ما مثل روح میمونیم. نه، داری ماجرا رو سر و پا میبینی. این واقعیت اطرافمونه که برای ما مثل روح میمونه. من که سر در نمیارم. پس خوب گوش کن، یه باور غلط بین مردم رایجه که فکر می کنن روح از هوا رقیق در حالی که برعکس روح از یخ هم جامد تره، همچین چیزی هیچ وقت به ذهنم نرسیده بود، پس بذار برات یه قصه بگم، یکی بود، یکی نبود، یه مردی بود که به فرشته ها اعتقاد نداشت، یه روز که داشت تو جنگل کار میکرد، یه فرشته اومد به دیدنش، خوب، اونا یه مدت با هم قدم زدند. بعد مرد برگشت سمت فرشته و گفت: خیلی خوب، باید اعتراف کنم که فرشتهها واقعاً وجود دارن. ولی شماها مثل ما واقعی نیستین. فرشته پرسید: منظورت از این حرف چیه؟ مرد جواب داد: وقتی به اون سنگ بزرگ رسیدیم، من مجبور بودم دورش بزنم. ولی دیدم که تو از بینش رد شدی. وقتی هم به اون تنهی درخت که رو زمین افتاده بود رسیدیم من مجبور شدم ازش برم بالا ولی تو خیلی عادی به قدم زدنت ادامه دادی فرشته که خیلی تعجب کرده بود گفت خب پس چطور ندیدی هر دومون وقتی به مرداب رسیدیم از میون مهرت شدیم این یعنی ما از مه جامعتریم. که اینطور این در مورد ما هم صدق میکنه سوفی روح میتونه از درای فولادی هم رد بشه، هیچ توپ و تانکی نمیتونه چیزیو که از جنس روح نابود کنه، خب بازی یه ذر خیالم راحت شد، دیگه تا ریسور راهی نمونده، یه ساعتم نمیشه که از به سرگرد زدیم بیرون، دلم بعد جور یه قهوه میخواد